درات که این برنامه میشه سلام از کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پنجره خیری رو محتاب که از شبکه فرهنگ رادیو، شبکه فرهنگ دوستان در سراسر کشور پخش میشه. ما در یک شب شب ها درباره شاهنامه صحبت می‌کنیم. داستان شاهنامه رو ای دکتر فریدون جنیدی برای ما میگویند و راز و رمز اون رو سلام آقای دکتر جنیدی شب برشت امشب ما در برنامه ادامه داستان رستم و سخراب رو داریم در همین آواز من خدمت شما تلفون های برنامه رو ارز میکنم 220-485 220-485 220 پانصد و هشتاد و هشت دو صفر دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر و شماره پیامک ما سی هزار پانصد و و هشت هست سی هزار پانسد و پنجاو و هشت پایگاه اطلاعرسانی ما سایت اینترنتی ما دابلیو شما از طریق هم میتونید برنامه ما رو در اون قسمت رادیو ها بشنوید به اون قسمت وارد بشید رادیو فرهنگ مشخص هست و میتونید بشنوید و اگر بخواید میتونید به عزیزانی که در خارج از کشور هستند بفرموید که از این طریق برنامه ما رو بشنوید خوبید؟ شاد باشید شما همینطور شاد خورم شادی برای همه مردم. شادی برای همه مردم ایران و همه شاهنامه های خودشون رو باز کنن و با هم دیگه یعنی در خدمت آقای دکتر جنمیدی شاهنامه رو بخونیم داستان رسید به کجا آقای گفتو استفاق ایران به نزدیک دیجیستفید رسیده و جا زمانیست که صغراب از هجیر میپرسه درباره باره پهلوانان بله. تا از اون میان دوستن بروش نست بله کهخوررد سوی بالا کمند ز بر زبانه برآمد شرخه بلند این خورشید هنوز این بر نی طوللو نکرده کمند تو به طرف بالا اگر شما صبح زود پیدا داشتهشه قبل از برمادن خورشید ببینید که اول کمند خورشید میاد قبل زبانه ها میاد به طرف بالا بعد کم کم خود خورشید پیدا میشه اولا اون تلالو و اون درخشش درخشش اون پرتوهای پرتوهای خورشید اگر هوا صاف باشه این پرتوها به اطراف مثل همون چیزی که روی های خورشید میکشن پرخش میشن زیبا زیبا تا این منظره هاست با طبیعت دیدن و اگر عبرالوت باشه طور دیگه من یه بیتران از پاقانی شربانه بیاده بردم که اون رو مخصوصا بخونم تا جوانان ایران همه ایرانیان بدونن که ما از در دانش کجا بودیم یه روز ابری رو در حقیقت بست میکنه که صبح خوشید برامده و این عبرها قلمت رنگ شده این بیتش اینه که گرچه از کبریت روزت چراغ زو چرا آسمان فرخشیده اند؟ این اون عبری که قرمز رنگ شده به شکل کوگرد شده کبریت ها در اقیقت معرب کوگرد فارسی کوگرد در سبان تعلیب کوگرد در فارسی می کوگرد شده کبریت اگرچه چراغ رو با کبریت می افروزند اما این روز میبینیم که اون کبریت یعنی عرب ریست و افرنگ چلو چراق و یعنی خوشیت تو گرفته خوشیت ما از این چی میفرمید؟ اه... رو رو روز خوشی، روز، تلالای خوشیت، زی از چما بپرسم تا شنوندگان هم بله. جوان هم فکر بکنن در زمان خاغانی نوصد سال پیش ما گوگیرد رو وسیله افروزش چرا قرار میدادیم تا در حالی که خود, خب خود. این... سال نیست به این موضوع رسیده این کبریدی که امروز داریم در کار نیاکان خود ماست این بهتر خوانی کاملن من منم تا اولش که شیر رو خوندید گفتم کبریت یعنی اون موقع یعنی بوده همچنان موقع می سنگ چخماخ هست و سنگ به هم می زنن ولی سنگ بوده ولی کبریت هم بوده یعنی کبریت رو ما اختراق کردیم هشتت پیش. سال پیش پیش شاهد و گواهشه پیشتر چقدر بوده ما نمی دونیم که باز در یعنی هستا, هستا و ک خود پاژی در از آبان عوستایی بوده ساکند وند یعنی جسمی که دارای سوختنه. یعنی دارای سوختنه. سختنه به اگر زبان عوستایی رو بگیریم متعلق به 3500 سال پیش اون زمان میدونستند که گوگرد سوختنیه من اینا رو میگم برای که جوانان ایران بیدار بشن اون که اون شب گفتم ایرانی بیدار شو یکی از دوستان از من پرستی بیدار شو یعنی چی؟ یعنی از این خوابی گران ما باید بیدار بشیم بدونیم که نیاکان خلطمند ما چه کاری در فحنه گیتی کردن بدونیم چه تاریخی داریم چه خوبیتی داریم سر مایه همین هم, هم شانام است در هر خور سوی بالا کمند زبانه براموند شرق بلند به پوشی سهراب خفتان و جنگ نشست از برای چرمه موشگرنگ یعنی از سیاخت دی به بر خم. خم و روی کرده دو جم این کمند شست خم بیجی رستن بوده که می نیم هم به همون نمزه کمند به این بلندی داره بیا اومد یکی برز بالا گزید، به جایی ای که ایرانیان رو بدید به تا رفت پیشش هجیر به دو گفت کجی نباید تیر، این تیر باید حتما راست باشه و تو هم باید سخن راست بگی سخون هر چه پرسن همه راست خوی متاب از راستی هیچ روی یکی برز پی کرد رفش سرش ماه زرین قلافش بنفش به قلب استفاهندران جای کیست زگردان ایران ورا نام چیست به دو گفت کن شاه ایران باید به درگاه و او پیل و شهران باید. اینجا می بینیم که نخستین بار از درفش یاد میشه که محش خورشید داره اون مال و کابوس نکاسیان یعنی سستله کاستیان نشانشون خورشید بود. و شما بینیم که این خورشید چند هزار سال روی درفش های ایران ادامه زندگی داشته تا بالاخره به این زمان رسید. بفرسید کن سرخ پرد سرای سواران بسید گردشندر به پای یکی شیر پیکر درفشی به درف درفشان و اندر میانش گوهر چون گفت کن فر آزادگان سپهدار گودرز کن گودرز نیای کردان و لوران و لکا و آذربایجانیان بوده و درفشش با نقشه شیر پس میبینید که شیر و خورشید وقتی که روی درفت میاد مثلا ما در زمان سرجوکرانه سکری داریم که شیری نشسته آماده برای حمله است و در آسمان پشت بالا یه خورشید هست یعنی در حقیقت تداوم داشته این نشان ها در فرهنگ ایرانه در زمانی که به نهایت زرف و بیچارگی میرسیم در همه همگام محمد قاجار و وزیری بی کفاید تو حاج میزاقاسی اون وقت شیر رو بلند میکنن خرشید ملان رو پشتش و یه شمشیر هم دست شیر میدن که این تو به این ترتیب یه نیروی شیر بیشتر میشه. در حال که شیر بدون شمشیر شیره و این کار میزاقاسی بود سیک از کاره بود که برای ایران کرد و این سابقه پیشینه شیر و خورشید چند هزار سال دست داریم و فر آزادگان یعنی نیای کردان و آزربایجانیان و لوران بلک ها، در اون زمان ریاست انجمن میستان ایران داشته میبینید که حجیر از او به عنوان فر آزادگان یعنی فر ایرانیان نام میبره بفرسید کن فرد سرای یکی لشگری گشت پیشش به پای گشت یعنی انبو چون گفت کس چین یکی نیک خاخ به نبوی رسیده است نزدیک شاخ بپرسید نامش زفر و خجیر بلو گفت نامش ندارن ببیر بیرینی حافظه همه اکرونم هم در گردستان بیر میگه بیریم چو بیریم چو یعنی از یادم رفت شما در کلماشان میگینم چیزی چیز رو بیاد ندارین بیریم چو نزیز ازشیان از میگن میویر شو یعنی از خاطرم رفت ویز یعنی حافظه به دیندهش بودم من به دان روزگار کجا اوبی آمد برای شهریار یعنی این یک پهلمان چینی اومده و من نامش رو بیاد نبرم نوشته به سربرد گرگونه بود فرمان نه کاهد نخواهد فرود. از آن ب... پس به که از مهتران کشیده سراپدهی برکران به دو گفت کان پور گودرد گیو که خانند گردان برا گیو نیو به دو گفت زانسو که تابند شید براقیت یکی پرده بینم سپید به دو گفت کورا فریبور زان فریبور که سر کاروزب که فرزند شاه هست و تاجی دوان بفرسید کن سرخ فرد سرای به دهلیز چندی پیاده به پای به گردندرش سرخ و زرد و بنافش زرگونهی برکشیده درفش چون گفت کورا و گرازه است نام که در, چنگ... که در جنگ شیران نتاود بگم گرازه هم پسر یکی از پسران اه... گودر زودن نشان پدر جست و با همی داشت آن راستی در نهفت دگر پرسید از آن سرفراز از آن کش به دیدار او بود نیاز به پاسخ خجیر صفح گفت که از تو سخون را چه باید نهفت گر از نام چینی بمانم همی از آن است کورا را همی نمیشناسمی. ندانم در فارسی هم به معنی مدانستن هم می میبینید که و انگلیسی هم همین خاصیت داره اونم از همین ریشه پاجه فارسی است به دوگور سهراب که نیست داد زیر رستم نکردی هیچ یاد کسی خوب و بد پهلوان جهان میان سفه در مماند نهان این داد پاسخ مرو را حجیز که شاید بودم، کن گو شیرگیر کنون رفته باشد به ظاولستان که هنگام بزم است در گلستان بد و گفت سحراب که خود مگوی که دارت سفهبت شوی رزم روی به آمش نشین در جهان پهلوان و روبر بخندن پیر و جوان موقعی آن جوم نگرفه که با ابوس به طرف رومدهچهان پلوان درمهژه ممکن نیست. یک یک دقه می دنبال پدره های ها رو معرفی میکنن آه. که پدر رو پیدا من رو با تو امروز پیمان یکیست بگوییم و گفتار ما اندکی. اگر فلوان رو آنمایی به من صفراز باشی بر هر انجامن تو را هم در جهان اگر داری این راز اندر نهان سرت را نخواهد همی تن به جای میانجی بدین هردو هر دو رای یعنی میکشم از سرتو میبرم چون این داد پاسخ خجیرش که شاه یعنی سهراب چون سی راید از تخت و مهروک کلاه نورد کسی دویدم در جهان میانه کهان و میانمهان که اون جند پیلند را آورد بگرد گریزد از او شیر روز نبرد میگه تو دنبال روستن میگه دیگه این بیجی یاد داره بدو گفت سهرا از آزادگان سیخ بخت گودرز کشوادگان کجا چون تو را خاند باید به سر بدین رای و این دانش و این هنر تو مردان جنگی کجا دیدی که بانگ پی اسب نشنیدهی از آتش تو را بیم چندان بود الاته ده هم همه بردن تو را من پیشنهاد میکنم که از آتش به دل بیم چندان بود یعنی انسان تا وقتی از آتش میترسه که دریاب به آرام جنبان بود یعنی دریاب در آرامش موج بخاره چون دریاب به مور جنب در آوی از جاگ ندارد دمه آتشی پی پای موجها بلند بشه روی آتش بریسه آتش رو, رو آتشی که در درون این هست نه آتشی آه آموش میشه خواهی یعنی میگه من اینطوری هم در برابر پهلوانان مثلا رستمی که تو ازش دارید دفع میکنه سر پیرگی اندر رو به خواب چو تیغ از میان برکشت آفتاد خفشی درشن بشه جیرگی به خواب میره یعنی شب به چید رو بگرفت نیزه به دست و اوورد گهرفت چون پیلم هست خب اگر اجازه بزید اینجا آبی هم شما بنوشید گروی تا تو با من ده... ما هیچ وقت نداشتیم شما آب... میخوایید الان آب رو بنوشید برای خواهیم بایامت کن شما همون موقعی هم که میایید کنید تو این فاصله ها باز چون سوالات زیادی هست فاصخ میفرمایید. با سلام به مجری توانگر هدایتی عزیز استاد آلیف رد خیلی لطف داری استاد آلیف جناب دکتر جنیدی چرا به فریدون لغب گیهان خدایی دادند آیا قدرت پیش بینی داشت و به این قدرت بود که به بدسگالانی بدسگال های سلم و تور آگاهی یافت آقای آهنگر از بسفول شاد پوشید فریدون است که حکومت بین آریاییان تختیم نشده بود بنابراین که هم خدای بود یا هم خدای بود یعنی تمام کشورها مرزهای آریایی یک پادشاه داشتن و فریدون پادشاها بود در شانه ها فریدون افسونگر افسون رو امروز ما به معنی فلسم و جادو اینا بکنیم بریم اما افسون یعنی چاره افسونگر یعنی چارهگر و در کارهایی که در زمان فریدون شد میبینیم که چارگری برای خیلی از دردها و خیلی از فریدگری ها کارهایی که به صنعت و به فن و به بینش و کوشش و دانش پیوست داشت در زمان فریدون به انجام رسید بنابراین اون رو گفتن فریدون افزونگر یعنی کسی که چارگر هست به ویژه در زمینه پزشکی ما نخستین داداهای پزشکیمون از زمان جمشیدی که دارو پیدا شد و اگر به خاطر داشته شدید در اون دوران یک بیتی مومده بود که نشون میداد که ایرانیان پزشکی رو از بهداشت جدا میکرد پزشکی یا و درمان و هر در هر دمند در تندرستی یا راه می بینید که از آن رو گرفتن یعنی بهداشت یعنی هشت هزار سال, سال پیش ایرانیان بهداشت رو از پزشکی جدا کرده بودن میشناختند اما با این حال با اون پیشرفتی که در اون زمان شد، در زمان فریدون بسیار پیشرفت‌ها بیشتر شد که نمونهاش از جمله همون سر جمجمعهی پیدا شده اون دختر در سیستانه که چونزه این عمل مرق روی مرد. پیدا شده پیدا شده پیشتر از اون چی بوده ما نبدویم خود زادن رستم که رستم زاد باشه یعنی هنگامی که خوفتن فردی مادر و بچه که از و مادر، الان سامان بجار... میگن کاری میکنن؟ سهزاریان حالا، الان رو... سهزاریان، جوری... نه سهزار؟ آشیخه مادر مرد بیرون میتونم؟ روستام رو آشیخه مادر زنده بیو، این فرق داره؟ یعنی مورد دانش داشتیم، مادر سهزار مرد، باید گفتند خوب حالا که بچه اون تو تخم و زنده است، یه حالا که این مردش یکم چه پاره کنه بچه را ور این دانش نیست، به هیچ وجه این دانش است، دانش اونی که نه کان مادرش شا همه این کار را از زبان فرید بله. آیا همین جزاح هدایتی را مانده نباشید در مانده نباشید. از بس که پیامهایم را نخواندید دیگر شماره را فراموش کردم. میخواهم زبان دهید که امشب پیامکم را بخوانید. درود بر استاد بزرگ فیضون جنیدی دو پرسش داشتم نخواوذ چرا زبان اوستایی با آن تکامل با گذر زمان فراموش شد؟ دو دیگر درباره هم توضیح به شاد باشید شوکتی از جم و ریز از جم و ریز جم و ریز به بوشه دو منطقه هستی میدونم دو, بره. دو تا محلت جم و ریز آقای درود بر شما و درود جم و ریز خم ایک گیاهی بوده که ایرانیان نخستین بار پیداش کردن و در موتون ستانسکیلیت سقومه در ارستا حقوم در حالوی هوم و در فرسی هوم و هوم حتی خونده شد این گیاه خوابی افیدرینه که اندکی درمان بخشه و حالت در استراحت میده به انسان و به ویژه برای سرماخوردگی خیلی خوبه این نخستین گیاهی بود که ایرانیان برای بر درمان پیدا کردند و کوبیدن و اصاره اونو گرفتن و هم در حقیقت اندکی نشتابر بود هم درمان بخش بود این هم سالیان دراز با همراه ایرانیان بود بعد کم کم دیگه حالت تقدس گرفت در مراسم آین های و در جشنها ها یعنی ستایش و همه این مراسم مذهبی این هم کوبیده می تا اینکه در زمان زمانی که که در حقیقت سازمان های مذهبی و موبدان خیلی رسید وبی افزود با همین کارش هم تا به ایران ضر زد یکی از هشت موبدی که در هنگام خواندن یافزاد اونجا معمولیت داشته اسمش بود هاونان یعنی کسی گم رو میکوبه. از برمدن آفتاب تا نیم روز این کار انجام میگیره. امروز که هم کاربرد نداره و برای دارو داروهای دیگه به دست اومده. این داروی بوده که ایرانیان پیدا کردن این و مای مذر که در از اصل گرفته بودن قصیم داروهایی بود که در زمان جمشید بود. و زمان عویستایی با این تکاملی که داره که اکنون در جهان هیچ زبانی مثل اون نیست یعنی چهار علامت داریم با چهار علامت افسوده چهارهش علامت برای بیان آواهای ویژه داریم که اون آواهای ویژه امروز در زبانهای معمولی اصلا کاربورد نداره مثلا آ آن این که میره توی, بین، توی بینی حبس میشه و این گستردگی و این توان عظیم که در زبان عوسته بوده ویژی حقیقت کارهای دیوانی و نامه و کتاب بوده که با اون بتونه همه آواها رو در حقیقت به زبان بیارند و بنویسند و به زبان بیاد اما زبان فهردی که زبان ساده شده است که بعدا به فارسی در قطع تغییر بود کرد الان فارسی کاملترین بهترین زبان دانشی جهانه و من اینا رو برای کتابی که فکر نکنیم که من هم. همین سخن از روی هوا و خوست میگم نه حسوس شما من به بعد از اینکه که روی داستان ایران به پایان برسه یک کتابی دارم که در گسترده یک سخنانویست که در تاجکستان بیان شد زبان فارسی برترین زبان دانش جهانه این که زبان ما آسون شده و با آسونی میتونیم با ترکیب واژه ها واجه های جدید بسازیم و این سادگی خوبه یه تکامله این، اون زبان کامله البته ولی برای همون کار کاری بیوانی صورت صرفی در ارزم داریم امروز لازم نیست ما دیگه معنیس مذکر نداریم در زبان فارسی خوشبختانه در زبان اروپایی می میبینید که مثلا در آلمانی هنوز هست در فرانسه هست در انگلیسی ازبین رفته ولی باز در سوم شخص هیوشی دارن یه هی خورده و در, گفت در نام ها اینا نام ها مذکر معنیس دارن اما این ازبین رفت این کامل شده یه زبان می‌بریم. مطمئن باشید که زبان فارسی فرزند خلف زبان عوستاییش در جهان و در آینده کاربرد خوب داشت خواهد داشت و اینم به شما عرض کنم که موقعی که اینگلس و مارس این ایده خودشون رو بیان کردن که دیگه شکست خورد اون موقع اینگلس در یه نامهی به مارکس نوشت نوشته که من این چند روز مشغول خواندن زبان شیرین فارسی هستم و به زودی دارم یاد میگیرم و ای کاس کاسکه حالا اسم اون رو به یاد ندارم کسی که رهبر کارگران آمریکایی بود میدونست که این زبان چقدر زبان خوبی که و میتونه که زبان میانجی باشه بین تمام ملل رنجبر و کارگرها و رنجبرهای جهان یعنی این داوری انگلیسی درباره زبان فارسی یعنی انگلیسی که از دو کسی که اون انگوزور این ایده مارکس این طورoverline ringes. ما یه حچی زبان داریم. قرض شباب بدونیم ما. به زودی من اون کتاب رو هم یعنی او. به زودی که دیگه که اینکه کاری که در پیش دارم البته. اون رو کتاب رو خام و به ایرانیان صاف خواهم کرد که این این در حقیقت چیزایی که در زبان فارسی ها هم زبان ما خواستم بگم که نخستین دستور زبان فارسی که در جهان نوشته شده در چین نوشته شده. و شما وقت این ابن بسوزه میره به چین ابن بسوزه سواد نداشت حافظی شگفتی داشتی که برترین کمپیوتر جمان بوده اینا رو همه رو بعدم گفته و نوشتن میگه که من از روی پولی جسری من الحجر منم رض شدم که به آن میگفتن پول سنگین یعنی پول پولی که از سنگ ساخته شده یعنی ایرانی ها ساختن و خود ابن بسوزه میگه که با امیزاده چینی روی رود رود کشتی نشسته بودیم و رامشگران اونجا نوای خیلی عجیبی می زدن که امیزتاده چینی خیلی غرق در التحاب می شود و بارها میخواست که تکرار کنن و این, اون این بود که تا در نماز استاده گویی به مهرابان داری تا دل به فکرت, فکرت داده در بند قم افتاده تا در نماز استاده گویی به مهرابان داری این رو خب امروز ما می دونیم که از شر که صورتگر دیوای چین رو صورتی که آران ببین ببینید که در چین رامشگران یک آوای غریبی میخوندن که چینی نبوده پس ایرانی بوده و شیرشن فارسی بوده و امیزاده چینی از این برفروختم شده و تکرارش میخواسته این زبان فارسیست در زمانی که ابن رفته این مسافرات ایران در حضیز بود یعنی در تمام این از اون سو که عرب هم میکرده بود از این سوام که تاتارها و اینها همه پادشاهان ایرانی غیر ایرانی بودن و ایران یک نیرو و قدرت جهانی نبود اما فرهنگش و زبانش نیرو و قدرت جهانی بود ولی که میبینیم تا چین رفت از این سو تا اروپا رفت الان زبان یوکسلابی به زیادی زیاد وجاهه فارسی کره من یه دوستی دارم آقای دکتر مولا صالحی که استاد باستانشناسی هستند در یونان درس خوندن ایشون گفت من دویست و دو هزار واژه فارسی در زبان یونانی فرهنگ هم کرد. من خواهش کردم که لطف کنم با در بنیاد نیشابور این رو به چاپ پرسونیم و میگفت که یه اصطلاحی دارند یونانیان وقتی کسی که خیلی بلیغ و خوب و شیوا صحبت میکنه میگن داره فارسی صحبت میکنه ما قدر زبانمون بدونیم برترین زبان دنیا زیباترین زبان دنیا توانا زبان دنیا اینم بخاطر خاطر اینکه دیگه این شنوانده عزیز گله نکنی که بر شما نخوندین من پاسخ رو البته برای همه ایرانیان گستر بکردم بذارم و آقای دکتر فریدون جنیدی از شاهنامه فردوسی میخوانند از داستان‌های شاهنامه میگویند و داستان رستم و سخرا منطقه آقای دکتر جنیدی اجازه بدید یه پرمیمه که که خیلی دوست دارم بخونم بخونم درود بر شما من همراه برنامه زیبای شما قالی میبافم بخ بخ یه پانوی آیا به این هنر اصیل ایرانی در شاهنامه اشاره شده؟ شاد باشید. نرگس، خانم نرگس راستی. در روز بر نرگس راستی با این نام زیباش که امیدوارم گل نرگس و ناصین و گل‌های این ایران رو روی رو خالهای خودتون بیارید. بله، من در شاهنامه گستردنیام همین همیشه مده. چون جامعه تذون پهلوی بوده یامک به فرصه شده جامک و بعد شد جامع, جامع یعنی پارچه این چیزی ما امروز میگه پارچه گفتن پارچه نادرسته بره که پارچه یعنی پارچه یعنی یه قسمتی از یه چیزی ما امروز همه میگیم پارچه و نادرسته باید بگیم جامه اون وقت جامه سه جور بوده یکی جامع آویختنی بوده که پرده بوده و یکی جامع پوشیدنی بوده که همین جامعه و لباس امروزی باشه و یکی جامعه گستردنی که این قالی بوده در شاهنامه بسیار از گستردنی گستردنی هریر حتی و هفرشم اینا یاد شده شما یعنی پارچه یعنی یه قسمتی از یه چیزی ما امروز همه میگیم پارچه و نادرسته بعد بگیم جامعه وقت جامعه سه جور بوده یکی جامعه آویختنی بوده که پرده بوده و یکی جامعه پوشیدنی بوده که همین جامعه و لباس امروزی باشه و یکی جامعه گستردنی که این قالی بوده در شانه من بسیار از گستردنی